نتیجه هم وضع دینی کشور اینه دیگه تو کشور اماموزان قرآن آتیش میزنن روز قیامت کوش من شما رو میگرم یه این چه تربیت دینی بود به مردم دادی. و این تربیت نکردیم مردم کاری نکردیم برای مردم خب بلش کنه لاتی که هرچی عوضو بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هوا خیر و موفق و اموین از خدا میخوام که انشالله این طلبگی ما باعث جهنم رفتن ما انشالله نشه ما طلبه شدیم که آدم بشیم و دیگران رو هم آدم کنیم و تا میترسم روز قیامت بگن اگه تو طلبه نبودی راننده یه تاکسی یه بدبالی چیزی بودی الان میرکتی بهش بایی شفایتی چیزی میرکتی بهش مطار روحانی شدی، مسئولیت داشتی، کار انجام ندادی، درس نکندی، نا فعلا با تو کار داریم، وایس رو ببینیم چیکار کار کردی، مسئولیتات و اینا خدا خودش راه کنه به ما بالاخره. فلا یو نافی ترتیب الاسار المذکورت الالمذکورات ول والاجتزاء او بهافی مقام الامتصاله الگاوله به این که المرجع فت تطبیق هوا العقلو لال ارفه چه ما هوا المشهرو از یارجی اول امر رو فی مسال هزه الموارد لا تعین المفهوم لا تطبیق علی خب یه بحث اینجا پیش میاد بحث تعیین المفهوم و تطبیق بر مستط اینو اول مقدمتا توضیح میدن بعد وارد به بحث کتاب میشه تا ببینیم چی داره میگه ببینیم ما دوتا آنوان یکیش تأیین مفهومه یکیش تطبیه مفهوم و مستان این مقدم است اینو به عنوان مقدمه باید شما بلد باشید تا کتاب روشن میشه باشید تنین مفهوم مثلا شما اتون. یه مفهومی دارید اسم مثلا لباس مختص یه مفهومی دارید اسم مثلا آلتال قیمار یه مفهوم مثلاً مسافرت شری، یه مفهوم داریم مثلاً مفهوم داری ولد خب این مفهوم ها رو ما می‌خوایم ببینیم چی هم و هم خواهد چه کسی مشخص میکنند چه کسی معین میکنند مفهوم لباس مبتستا چه کسی میگه که این لباس مختص کفاره چه کسی میگه این ابزار ابزار پیمار است او. چه کسی میگه این مسافت شرگی هست یا نه سال عرف دیگه عرف به شما میگی که آجم این لباس چون سیره کفار بوده لذا مختص کفار خوش بیان بودی که این ابزار چون در بین قمارباز ها برای قمار استفاده میشه نه برای چیز دیگه لذا این آلت بمار آلت مختص بمار مسافت شرعی هشت فرسخ فرسخ رو چی ماشد تصمی کنیم مسافت شرعی رو هشت فرسخ رو چی ماشد شاهر میان میگه آقا جان من برای یه واحد طول برای شما مشخص میکنم این نده نه دیگه اینا همهش عرفه مسافت شرعی هشت پر سخت و رسولت عرف باید برنا تایین بشه باید که چجوریه همینطور محوم بلد فرزند فرزند یعنی چی؟ یه اینا رو رفته. پس ببینید میگن تایین المفهوم کار عرفه هاینه مفهوم کار ارخه لذا همه‌ی نرمال‌ها و ارخ‌های دیگر را ارخ باید برای شما مشخص کن اما وقتی ارخ، دقیق کنید اینجا شما می‌دونم وقتی ارخ مفهومی را مشخص کرد، گفت آلت‌ال‌گمار اون چیزیست که ما تعور فرد و تقام را به متعارف شد قمار بازی کردم با یک کاری اینو عرف گفت بعد ما میان در خارج میبینیم که مثلا با این ابزار همون تعریفی که عرف به ما ارائه کرده بود اون تعریف بر این صادق است اون مفهوم بر این تپبيق می کنه دقت کنید این اینجا شرط مهمه تپبیق مفهوم بر مستاق اینم کار عرفه یا نه عرمان رو می کنم مفهوم عرفی رو گرفت نگاه می کنه اون مفهوم در جا صدقه می کند تطبیق مفهوم با مستاق کاره چیست ایو عرم یا عرف عرف در قطع کنیم با خوشبانی دلیرست که تو زنیتون باشه چلا تطویق مفهوم بر مصطاق این کار عدل عدل میاد میگه اون مفهوم در این میکنه. لذا دوتا می کنه لیتا در بینه علماء مشبور تعین علما مفهوم کار عرفی. ولی تطویقش بر مصطاق کار عرفیست کار عدل عرفی حالا شما ممکنه بیدید که خوش فهم میکنه بالاخره تطویق تطویق دیگه یه به حساب میگنم بلاتون اگر اگر خوش کارید اورف بیاد برای ما مسافت شرعی رو که چه قدر مسافت شرعی؟ هش فرسخ. هش فرسخ دیگه ارف بیاد بگه هش فرسخ یعنی از اینجا تا فلان مقدار مثلا هش فرسخ مثلا فرقه 45 کیلومتر مثلا عرف برای ما هش فرسخ را مشخص کرد این کدومه تعیین محفومه یا مستاق تعین محفومه دیگه هش فرسخ ما می آقا جا 45 اگر عرف می 80 کیلومتر. میگو 50 کیلومتر برای ما همون میار بود چون این تعین مفهوم فرسخه در مسافت شهری لازم دید بعد شما ددت کنید شما از شهرتون خارج میشید میرید میرید میرید, میرید تا اون 45 کلومتر که میار وفی ما بود برای فرسخ 8 فرسخ. تا 44 کیلومتر میرسید عرف چی میگه؟ میگه 8 فرسخ رفت دیگه 8 yes. فرسخ شد دیگه یعنی الان از شما بپرسن چقدر را رفتیم؟ میگه 8 فرسخ را رفتیم بعد میگم دقیقه دقیقه 8 فرسخ رفتی؟ میگه الان دقیقه نه یه, یه کیلومتر کمتر خب حالا به من بگید ببینم. الان این مفهوم 8 فرسخ بر این و 44 کیلومتر تطبیق میکنه یا نه تطبیق نمیکنه چرا چون معیاری که باش میخوایم بررسی کنیم معیار چیه حق عقل... نه عرف نیست عرف تسامح میکنه در تطبیق هم تا تسامح میکنه مثلا الان اینجا میخوام یه صندلی بذارم ممکنه عرف به همینم هم صندلی بگه دو تاربولو چه ساختمانی بزنی اینجا میگه یه سندلی خب سندلی نیست که سندلی ولی صدق نمی کنه تطبیق نمیشه براش عقل میگه آ این تطبیق نمیشه ولی عرف میگه چرا حالا معیاری که فوقه ها و اصولی ها گفتن گفتن معیار در تطبیق مفهوم بر مس اون معیار عقله و عرف قابل قبولی هم است چون ما ببینید مفهوم رو داریم اون افراد جزئی رو هم داریم اخنا ما بلست کنم ببین اون مفهوم اینجا صادق هست یا نهیه نگاه میکنم این صادق هست یا صادق نیست اما اینکه خود این فرسخ چقدر؟ عرف مردم میگن اما در بین ما اینقدر بری میگن یه فرسخ اینقدر بری میشه دو فرسخ اینقدر بری میشه هشت فرسخ این محفومه بله بله الان توحین خودش یه محفومه عرفی است چت مثلا قرآن اینجا اینجاست من پا ما درس کردم حالا دقیقا رو به اونم نه این وری درس کردم قامو قران اونور من قامو اینور این عرف ما میگه که این توهین هست البته تعینه ببین توهین یعنی تاصی کنم جمله رو درست کنم عرف ما میگه توهین چیه مفهوم توهین رو برای ما مشخص کن یه کاری کنی که معلوم بشه تو احترام اون رو را رعایت نمی‌کنی این کار عرف اما این فردی که الان رخ داده آیا توهین هست یا نه؟ این دیگه عقلیه یعنی عقل ما نگاه میاد این شورا رو میسازه میگه این توهین هست یا نیست و در این مساله مطلب تعلیمات زیاده و مطلب مهم و مفیدی هم هست و این جا داشت که خودش یه بحثی باشه اینها جداگاره یه بحثی باشه که در این کتاب و به صورتی علمان روش کار بشه ولی خب در لابلای این بحثا بود خیلی خب این مقدمه تمام حالا بریم سراغ کتاب ببینید کتاب اینو مقدمه تمام شد بریم سورا رو کتاب مطق کتاب رو بحث دیروز رو نگاه بکنید بخواییم یه اشکالی رو مطرح کنیم و بگیم اشکال وارد نیست عبارت کتاب رو ببینیم دیروز گفتیم که در اونجاهایی که سیره تمام الموضوع رو تنریح میکنه محقق میکنه جریان اینجوریه اگر این سیره نبود موضوعی اصلا نبود چند تا مثال زدیم آلت القمار عرف به ما میگه این آلت القمار شده یا نشده یعنی عرف این کار رو میکنه آلت القمار میسازه اصلاً عرف برای ما لباس مختص را میسازه تبیل درستش اینه و همچنین مثال دیگر عرف برای ما ظهور میسازه بعد گفتیم و من عدل عبارت رو ببینید ما آب چه گفته میشه بر مخلوط آب با املا هم آب میگیم چرا چون سیره بر این است که این چیه این آب دیگه سیره اون زهور آب رو در اینجا انجام داده بره ما این آب رو ساخته زهورش رو و همچنین طلا و همچنین یک سا گندم و این که توش یه مقدار کاه کرد کاه و اینا هم هست اینها رو میگه خب بعد اشکالی وارد شده اینا میگن که این آثار مذکور را شما بر این مزبورات مترتب میسازید مثلا مخلوط آب و املاح شما آب رو بهش میگید و آثار آب رو بر بار می‌کنید مثلا میگید این متهل است در حالی که این آب نیست این مخلوطی از آب و چیز دیگه است یا طلایی چه قاتی داره خدا گفته اگر تلا تو به این مقدار برسه زکات دارد شما میاید بر مخلوط طلا و یک آدیاج دیگه این رو مثلا یه زرده و همینطور اون سا خب در اینجا این معلوم میشه که این شما در تطبیق در تطبیق به چی الان رجوع کردید در تطبیق به اورف مراجعه کردید در حال که همین الان گفتیم تو مقدمه تطویق با با عقل روشن شد اشکال الان دو میگم الان شما آب مخلوط دارید در اینجا آب مخلوط با املاح البته نه به مقداری که از آب بودن در بیدید آبی که توش یه مقدار نمک و املاح دیگه هم هست شما همین الان گفتید که احکام آب برای مترتق میشود سوال اینه، اشکال اینه، چرا احکام آب بر این مترتب میشه در حال که واقعا آب نیست؟ میگید چون ارخ این را آب میداند، چون سیره بر این از که این آب هست. خب الان معیار شما در تطبیق عنوان آب بر این مصدق، ارخ شد دیگه خودت داریم این با اورف این بر اون منطبق شد. در واقع خودتون تو مقدمه گفتید که مئیار تطبیق مفهوم بر مسادیق ارش نیست که عقله در نتیجه دقت باید اینجا رو دقیقه در نتیجه من ببینید اگر مئیار تطبیق عقل باشه این طلای که توش نیم درصد ناخالصی داره عقلا تلاست یا مخلوطی از تلاقه یه چیز دیگه است مخلوط. مخلوط تلا نیست که یک سا جندم که توش چند تا کاهو چند تا دونیشن و اینام هست یه خود جرد و خال کنم توش قاطیه عقل شما میگه این گندمه یا مخلوطی از گندمه مخلوطی از جندمه پس آقایونه چی که این مطلب رو نوشتید این مطلب رو گفتید حرف شما با اون مبنای اصولی ها که میار تطبیق عقل از نور سازگار نشد تونستم برسولم اشکال رو؟ بله با صدیقی که ما به دماغ قیل محبوب رو کنم آها این جواب بیدی؟ نه آه آها خود مطلب رو توزید بله جواب همینه جواب این کتاب اینه که نه آقا ما این مطلبی که جلسه قبل گفتیم خیلی تلاش کنید همینجا بفهمید مطلب رو برای بعد از کلاس نموید ببین ما گفتیم یک سا جندوم حالا به فرط مهند این جندومه خب این سیره بر این قائم شده است که این یک سا جندوم است در حالی که در واقع، این چیه؟ مخلوط جندرم با مقدار یسیر یا با اندکی کاه و خاش است دیروز این رو گفتیم خب یا سیره برای ما این رو به این شعریت ساخته است. در نتیجه مفروع حفر و شرین شده بگیر و از اما این بودیه بعد حالا اشکال وارد میشه میگیم که جان تطبیر مفهوم بر ماد کار اقل است به نظر مشغور در حالی که اینجا شما تطبیر عنوان یک سا چندام از این دیوان رو بریم پیمان گندم رو، رو حساب عقل انجام بدید یا رو حساب عرف اورف. رو حساب عرفه چون ببینید عرفه گندمه دیگه توش کا هم هست ولی عرفن گندمه خب الان تطبیقه عرفی انجام دادید در حالی که در شما تطبیق اونوان یک سا گندم بالغین مستاپ را با عرف انجام دادی من تبه از من روح روشن حالا اگر روشن نشده برای شاید من رویانم زدید پاسخش آقای آه... پاسخش کتاب اینه که دقیق نگردید ما کارمون عرفیه بله. این کار عرفیه گفتیم عرف یک جندم قاطی باشن و که رو عرفن یک ساق گندم میدونه ولی این مرحله تطبیق نیست این مرحله مرحله تعیین مفهومه کسی میتونه این حرف توضیح بده جواب رو مزد شد، مزد شد. چطور این الان تعیین مفهوم شد این حرف که ما از جلسه قبل گفتیم شما الان دارید دوباره مثلا مفهوم ماده ما این قاف دیگه بگیم که وقتی که از مفهوم آب در مورد صحبت میشود مستاقشونه که نسبت به یک سری مثلا هم لایم بسیار چند از بس آمان بود برای آب حال بیه چند که غذاب باقی داشته خب الان این کاره خب تعین مفهوم بود یا تطبیق بر مستاق؟ تعین مفهوم, تایر مفهوم, تایر مفهوم بود تعین محروم بود اضافه تعین محرومه <تصفح> یعنی میگیم آقا جان بیا تو عرف برای تو آب را من تعریف کنم آب در اوف عبارت است از اون آبی که توش یه مدار املاح و نمک و این هم فریدون میشه. تلای در اوف عبارت است از اون تلایی که قاتش یه درصد ناچیزی هم است. این تعینه مفهومه، نه تطبیقه بر مثلا. تطبیقه بر کسا، چما صدیه کسا، یه آب مشخص خست میاره، میگه این آب این آب پسی میسته، بسه اون مثلا خارجی، این آب پسی میسته. آنگاه می که مثلا یکی سیاه شده این هم بگیم بینیم مثلا مزمان بدنم بگیمیم که آبه ولی حقیقتا این که برمسش بگره بگیمیم چونه؟ مثلا نمک داره مثلا بدونی چشه نسان مثلا آب در یکیش ولی میگن نه آبه خب عرفن میگن آبه دیگه از این بعد باید دقیق کنیم یعنی الان این قسم میتونیم بخواییم که مستاقی آبه، آدا این عقلیه دیگه اما اون که آب شامل آب خالص هم میشه آب یزده نمکدار هم میشه آب املاح دار هم میشه این دیگه تعین مفهوم بود که مفهوم عرف برای ما این شکلی در اومده لذا این کتاب میگه آقا من که جلسه قبل گفتم بر یک سا گندم این یک سا گندمی که توش قاطی هست اون مفهوم گندم صیغ می کند. این در واقع تطبیق بر مستاق نبود تعین مفهوم بود لذا جنبندی کنم بحث رو ما سر حرف خودمون هستیم ما در اونجایی داشتیم بحث میکردیم که سیره محقق موضوع اصلا هم تمام موضوع سیره میاد برای ما مشخص میکند که این گندم، گندوم یک سال گندوم شامل اون خاط و گربخاک و این حرفا هم میشواد این در ماده تطبیق و نیست در ماده تعیین مفهومه دارم مفهومشو برای تو توضیح میدم مثلا مشکلی پیش نمیاد منافاتی با اون حرف مشهور اصولی ها که تعیین مفهوم با عرف تطبیق با عقل این مشکلی پیش نمیاد روی هرطوری فکر توی کتاب خوب و مهم و مفیدیه بحث کردن الفائر خاصیتش اینه که بحثاش بحثایه که در واقع از فقه اومدن تو اصول اصول رو ننوشتن بعد برن ببینن تو فقه بدرد میخوره یا نه این تو فقه نیاز این ها برگشتن تو اصول اینا رو اضافه کردن لزوما مفیدیه مفیده ببینید عبارت رو از همون من اجل ذلک میخونم و من اجل یعنی از این جهت که سیره در ظهور الفاظ موثره است دیروز گفتم نوشتیم سیره ظهور الفاظ را محقق است میاد برای ما ظهور میسازه نرقت بل آثار شریعت المترتبت فالعدلله علا عنوان ما بر چی نرقت با علا میاه الممتزجه یا مثال بعدی آثار شریعت مترتب بر عنوان زهب را بر اون چیزی که مخلوط تلاست و آثار شریعه عنوان ساع را بر ساعی که مشتمل بر جندم و شعی یسیدی از کراپ هست مترتب می‌سازیم. سازیم فلا یونافی. ادامه اونه این منافات ندارد فلا یو ترتیبل آثار المذکورته علمذکوراته این آثار را برون مذکورات مترتب کردیم ول اجتزا و بهافی مقامل امتصاد این اجتزاء میکنیم به این مسکرات در مقام امتثال مثلا شاره به شما گفته است که یک ساغ گندم بده تا تکلیف از او تحت شه شما میای به جای یک ساغ گندم خالص یک ساعت گندم میده که تو چند تا دونه کاه هم هست خب آیا مجزیست میگه بله ما اجتزای به این میکنم اجتزای یعنی مجزی بودن کافی بودن کفایت کردن من این رو میدم و کفایت هم میکنه کافیه خب این رو که الان انجام میدیم این آیا منافع داره میگه نه این فلایو نافی این القول این القول فتح داره روش فتح داره روش دوباره تو, تو؟ نداره خب فتح بذاره روش القوله مفعوله برای اون فلایونافیه منافات ندارد با این قول به کدوم قول؟ به ان هو العقل و و هو مرجعه فه تطبیقه هوالعقل و لل ارفو کما هوال مشهوره مرجع در تطبیق اقل هست نه عرف. و شما با این حرفای چه زدی اونو خرابش کردیم میگیم خراب نشد از چرا خراب نشد؟ چرا منافعات ندارد؟ علت برای لاینافی از یرج الامروفی مثل حاضه الموارده الا تعین المفهوم لد تطبیق علم مستاده میگه این که ما کردیم تعیین مفهوم بود نه تطبیق برد مستاد فردا این رو من میپرسم از شما این رو از شما میپرسم سعی کنید این رو کاملا جا بیفته برای ما توضیح بدید بسیار خوب. تو پاورری هم تذکر داده در اینجا مبانی دیگری هم هست مبانی دیگر هم هست حالا چون الان جاش نیست این وارد اونها نمیشیم ولی بحث خوبیه بحث های مفیدیه بعضی ها گفتن علت که اجتزای به این موارد میکنیم دلیلش این نیست دلیلش چیز دیگرست اونها دوگه مبانی است. حتی همین جمله که گفتیم تعیین مفهوم با عرف هم نظرات دیگری هم توش هست که انشاءالله به جای خودش باید پردست کن و کیفتان هم معلومه المعلومه انا للعرفه فی ماز رو کرم هل برمی گردیم به همون اصل مطلب خودمون به هر حال هرچی که باشد چون اینی که تا الان خوندیم در واقع یک پرانتزی بود من پیشنهاد میکنم پرانتز رو اینجا باز کنیم ببینید لد تطبیق علم مستاق که عدم منافات رو توضیح دادیم اون رو یعنی پرانتز رو اونجا ببندید. بله. خود اون فلا یونافی رو میتونید پرانتز رو باز کنید یعنی اون قسمت این دو سخت کلا یه اشکالی نیست در مورد همین حرفی که زدیم و خیلی شاید به اصل مطلب الان ارتباط خیلی نیست. سنگینی نداشت که حتما باید ذکر میشود. میتونستیم این رو نگرد دا... یا تو پا بیاریم. این کتاب پا... آ... الفائق به نظر من بعضی از بحثاش میشه به پا منتقل بشه. یعنی تو اصل مطر نماشه. و چیفکان بدیم اصل مطر فمن المعلوم اند للعرف فی مازا کرا من الامسلت لنهو الاول من از سیرت منقهت للموضوع فی مقام سبوته دخلا فی تمام الموضوع اور در این ای که ذهر شد برای این نهوه اول نهوه اول اونی بود که محقق تمام موضوع باشه دیگه من از سیره المنقه حلل موضوع فی مقام سبوت دخلا فی تمام الموضوع همونطور که میبینید تو همه این مثالها که زدیم سیره تمام الموضوع رو برای شما روشن میکنه و محقق میکنه توجه داشته باشید تو ابارت بعضی وقتا تصامح میکنه محقق موضوع نه کاشف موضوع کاشف یه بحث دیگر ایسی و هیس و لوزال الامر المتعارف و لزال انوان آلت القماره و سلکف، لباس الکفاره و دو به تمامه من رو ببینید اگر شترند در زمان اعمال مصطلح سیره بر این بوده که این آلت قماره است ما حکم شهری داشتیم که آلت القماره حراما به ایش رو این نگهداری شده حرفا اون حکم شامل شترنج می یا نه؟ برای دیگه آلت القماره دیگه سیر هم نمی بعدا فرض کنید که در سالهای جدید شترنج تبدیل شده به یک ورزش و از آلت القمار خارج شد قمار اصلا چهمار هستن؟ سیره دیگه استفاده نمیکنه یا خیلی کم استفاده می اون دلیل آلت القمار حرامون شامل این میشه الان یا شطرنج میشه یا نه؟ دیگه نمیشه دیگه. چون آلت القمار رو میگه. چرا شامل نمیشود؟ میتونه تحلیل کنید چرا شامل تحلیل این مطلب چه جوریه؟ خودی ما در واقع اون حالت قمار در هر زمانی که معروف بشه در متعارف بشه حالت این اینو با توجه به بحثای خودمون اینجوری ببینیم میگیم ببینید آلت القماش هم که شما فروندید اصلا وجودش به چیه وجودش منوط به عرفه منوط به سیره است وقتی سیره بر این هست که شطرنج رو باهاش قمار بازی میکنن میشه حالتون. وقتی سیره بر این نیست دیگه حالتون غماری نداریم. لذا موضوع گلن منتفی میشه. منتفی که شد حکمه نمیاد پس در اینجا به خاطر انتفاع سیره انتفاع موضوع داریم انتفاع موضوع که شد منتفی لَوْزَالَ الْعَمْرُ الْمُتَعَارَفُهُ انوان اَنْوَانُ عَالَتِ و لباس لَبَاسِ و وَظُهُورِ به تمام ظهور هم همینطور ظهور هم همینطور هم هم ببینید اگر ما در مورد لفظی ظهور داشتیم که معنیش فلان است خب برمه دیگه به خاطر اون سیره است به خاطر که مردم از این لفظ این معنا را میفهمن اگر جوری بشه مردم از این لفظ این معنا رو نمیفهمند دیگه نه ظهوری نداره ظهور که نداره، دیگه اون احکام ظهور ازش منتفی میشه خیلی پدر روشنه ثم انه بعد از زوال ما ذکر فهل یبقى الحكم الذی کان قبل از زوال این هم من پیشنهاد می‌کنم داخل پرانتز بذارید اینم به اون اصل مطلب ربطی در واقع یه تبصره است میتونست این رو یا یه تنبیهی است میتونست این رو در تنبیهات بگه یا در پا ولری بگه حتی و مطلب مهم نیان سم و این را میخونم ببینید بس چیه بعد از زوال مازوکر بعد از این که زائل شد آنچزک شد آنچزک شد توش ببینید یعنی سیره مازوکر یعنی سیره همین الان گفتی که زال الامر المتعرفت سیره یا امر متارف بنویسید که باید باید کتاب همخانی بود داشته باشه اگر اون سیره زائل شد همونطور که ارز کردم شطرنج سیره داشتیم بلی که القمار است الان دیگه اون سیره زائل شد فهل یبقا الحکمو آیا اون حکم بایی میماند؟ اون حکمی که کان ثابتن قبل از زواله املا جواب مشخصه دیگه جوابش رو بگید اگر سیره منتفی شد آیا حکم باقیست یا نه سیره منتفی شد حکم باقی نیست آه. یه نکته رو اینجا ازش کفرست شده کتاب این رو دقت داره میگه درست حرفتون وقتی سیره منتفی شد حکم هم منتفیه چرا چون موضوع منتفی شد سیره محقق موضوع بود نیست موضوع هم نیستی بنی میگه دقت کنید بعضی از حجوم بعضی وقت ها روی موضوع میره روی موضوع میره مقید به زمان هست مقید به زمان خاصیه مثلا ببینید الان ظهور لفظ که 1400 سال پیش در یه معنایی بوده مثلا در زمان نزود قرآن کلمه ولد به این معنا بوده دقیق کنید من در فهم قرآن اون ظهور رو میخوام دیگه سیره بر چه معنایی بوده همون رو میخوام تا معنای قرآن رو بفهم حالا دقت کنید فرق به همین کلمه ولد بعدا تطورات لغوی و اینها براش ایجاد شده اون ظهور از بین رفت الان ظهور جدیدی براش ایجاد شد یعنی اون سیره از بین رفت خب آیا این ظهور در قرآن ظهور اون زمان چه دیگه عوض شد یا اصلا از بین رفتی یه لفظی اون زمان معنا داشت الان دیگه معنا نداره مثل الفاظ فارسی که قبلنها معنا داشت هزار سال پیش معنی داشت الان معنی نداره بعضی از کلمات رو حتی همین 100 سال پیش داریم الان به شما بگن نمیفهم متوجه شدی یعنی اون زمان ظهور داشته یعنی سیره در این فهم معنا بوده ولی الان اون سیره از بهین رفته مثل همین ترانجی که یه زمان سیره آقلا بود که اولت القماره الان سیره نیست خب گفتیم تو شتران حکم نمیاد دیگه حالا تو ظهور چی ظهور در زمان پیامبر بر یک معنای بوده الان اون ظهور دیگه الان نیست یعنی الان از اون لفظ این معنا رو نمیفهمه پس اون لفظ دیگه حجت نیست. در فهم قرآن یا نه اون ظهور اتفاقا ظهور همون زمان حجت بود و ما اگر ظهور همون زمان رو پیدا کنیم هنوز هم حجته چی میگیت حالا؟ حکم میمونه نظرتون چیه؟ متوفید شدید حرفش رو میخواد بیه که این سیره ها بعضی وقتا بله داره میگه آه ظهوری که با سیره ایجاد شده در زمان قرآن همین حجته سیره بعد از این عوض بشه از بین بره اونا مهم نیست اونا اصلا ارزشی نداره اونا رو دست نزنید اونا رو کاری نداشته باش. در زمان خود قرآن هر سیره ای هست هر ظهوری هست همون حجته لذا این سیره حتی از بین بره هم حجمش باقی میماند پس دو دست است دو جوره یکاسه نگید هر وقت سیره از بین رفت حجمم میره ببینید بعد از زوال ما زکر فهل یبقل حکم اللذیکانه ثابتن قبل از زوال املا هازا تابعون میگه جوابش بستگی داره تابعون لتحدید ما هوا موضوع فت دلیل تحدید یعنی اون محدود سازی چارچوب سازی برای آنچه که موضوع دلیل است احوه نفس العناوین المذکوره عنوان مذکور خود خود عنوان مثل لباس مختص لباس شهرت عرض رائج یک سا گندم این اصلا زمان ممان توش نداره همین عنوان هر موقع بود حکمش میاد دیگه هشت فرسخ این عنوان هر موقع بود حکم میاد بعضی نه اینجا نیستن ام این ام صورت دوم ام یا مقیدتون به زمان خاصه بعضی وقتا اون موضوع که با سیره دست میاد مقید به زمان خاصی است مثل زوار مثلا موضوع و دلیل دلالت بر حرمت لعب و آلت القمار دلیل داریم دلالت بر اینکه بازی با آلات قمار حرام است حتی قصد برد و باخت رو این هم نداشته باشه این چه قماره و حرمت لبس ما یا لبس ما کانم لباس الكفار مثال دوم پوشیدن لباس کفار حرام است این مثال دو آیا موضوع دلیل در این جاها هوه این هوه خبر است برای اون موضوع دلیل هوه نفس و انوان آلت القمار و لباس الكفاره آیا اینجوری هست؟ یا نه اینها ها به یه زمان خاصیست حالا اینجا میگه که هو نفس این جمله سؤالی نیستی این خبریه من سوالی خوندم خبری بخوا مثلا موضوع دلیل دال اللا حرمت اللعب و این حرف ها نفس و انوان ال آلت القمار و لباس الکفار خودشه نفس این انوان لذا هر وقت سیره این رو محقق کرد حکمیاد محقق نشد حکم نمیاد نفس انوانه و من اجل که لا مدخله تلا معاصره صدق الانوان عین زمان صدور نصف فل لذا اینکه در زمان امام علی السلام شطرنج انوان آلت القمار رو داشت مهم نیست میخواد داشته باشه میخواد نداشته باشه الان اگر داره حکم هر وقت داره حکم هر وقت نداره حکم نمیاد مدخلیتی ندارد برای معاصرت صدق این دو عنوان با زمان صدور نص زمان ائمه که نسل صادر شده از اون در حرم است مهم نیست زمان خود ائمه یه لباسی لباس کفار بود حرام بود الان نیست دیگه حرام نیست الان هست حرام هست زمان مهم نیست هر موقع این عنوان اومد حکمی هست بل فعلیت حرمت فی کل وقتن در هر زمانی این چه حرمت فعلیت پیدا بکنه منوط به صدق اون عنوان در همون وقت هست منوط منوط و مشروط هست به صدق این دوتا عنوان که دو تا, تا بودی آلتالگمار لباس با در نفس اون وقت و نتیجه ذاره که سیره سیرت ح موضوع دلیل المذکور اون سیره ای که محقق است منقه هست این منقه و این محقق شماار گفتیم نسبت به اون موضوع دلیل ل در اینجا لام تقویت سیره ای که محقق موضوع دلیل مسئول است لا یشترط فیها معاصرت توها لزمنه سو این در رو میشه ببندید چند دقیقه باقی مونده است کلاس حواستون باشه درس در این سیره های که موضوع ساز هستند برای ما مثل عنوان آل القمار لازم نیست معاصر با زمان محسوم باشه همین الان اون زمان نبود فرض کنید در زمان ائمه بازی به اسم بیلیارد نبود الان بازی به اسم بیلیارد اومده و بد جونی هم خب حکم میاد یا نمیاد میاد دیگه چرا چون سیره این رو برای ما محقق کرده و موضوع حکم هم مقیده به زمان خاصی نیست هر وقت علمان اومد. بر خود علمان دفته. لذا مثال بیلیارد رو هم اینجا اتمن که از این بر. شطنج از اون بیلیارد از این حالا حالا حکم واقعیش رو اون دیگه فقهه. اون دیگه کار نداریم. فقط این یه مثال هست برای این مطلب جابی افتده. ولی حالا ممکنه بگیم که بیلیارد هم حالت ورزش پیدا کرده. پس بیلیارد... یه مثال دیگه پیدا کنید. لا یوشهال تفیها معاصره تو حال زمان سودور نص مانند همین بازی هایی که بازی کامپیوتر بگم بازی کامپیوتر میکنن قمار میکنن چیزای دیگه شرط بندی رو ورزش مثلا اینها و هازار اما اون ورچی بعضی از سیره ها موضوع رو موضوعش مغید به زمانه مثلا میگه آقا من ظهور درست میکنم برات سیره به ما میگه ظهور درست میکنم ولی این ظهوری که درست میکنم این حج مال همون زمانه خود قرآن ها سیره بعدن از بین بره یا عوض بشه اونارو رو کن همین زمان قرآن رو بچسب سیره زمان قرآن بعدن عوض شد اون دخلی در حکم نداره و هازا به خلاف دلیل دال علا ظهور زهور الخطاب فا این موضوعه هو زهور الخطاب فی زمن صدوره اون خطاب که قرآن هست یا حدیث هست اصلا هر متنی فرس ببینیم متن تورات مال 3000 هزار سال میشه خب اون هم ظهوری که در اون زمان داشته اون حجته نه اینکه که بعدا هر موقع هر ظهوری ایجاد شد همون حجته نه خیر، اون یه زمان خاص حجته لا ظهوره فی فلوسور المتاخرت انهو کما ها و واضح کن مطلب این واضحه دیگه مطلب خیلی مطلب مهمی هم هست اینا از مطلب هم. هر کدوم میتونست یه باب جداگانه برش باز کنیم و اونجا بحثش کنیم ولی اینجا در زمن این ان سیره المنقحه لزهور اون سیره‌ای که مربوط به نه مربوط به عنوان alat قیمار qamar این حرفا محسوس ظهور این مثال هست لزهور خطاب شاره مشروطه این دیگه مشروطه اون بالایی لایوشنند این نه مشروطه به معاصرت ها لزمن سودور ذاره کن خطاب و علیه فئن علمنا به معاصرت ها له اگر بدانیم در زمان خود امام، در زمان خود نزول قرآن، این لفظ ظهورش همین بوده، معاصرت این ظهور با خود زمان نزول قرآن، فلا اشغالفی حجیت ظهور المنقه على و السیره، اون ظهوری که منقه شده، محقق شده در پرتوه سیره، زوء سیره یعنی هم در پرتو سیره، در پرتو سیره یه ظهوری ساخته شده زمان خود قرآن هم بوده خب این معلوم حجت میشه دیگه و این علمنا به تأخر آعنه اگر بدونیم که نبابا این لفظ ظهوری که الان تو این معنا داره این مال بعد زمان خود قرآن ظهور نداشت در این معنا این خیلی مردم مهمی ها الان بعضی از اونایی که علمیت ضعیفی دارن قرآن رو معنی میکنن معنایی برای قرآن میگن که این لغت تو قرن هفتم ایجاد شده و معنا براش ظهورش بالا قرن هفتم به بعده در زبان این ظهور رو نداشت. چرا این کلمه رو می به قرآن؟ اشتباه میکنن حالا ایشون همین رو میگه. میگه اگر این علمنا به تاخره ها انه فلا اشکال فی عدم حجیتها از ظهور. مثلا تو قرن سوم ایجاد شده زمان ائمه ایجاد شد فی حجیت ما هو از ظاهر مند دلیل به قطع نظر انهاز سیره. بله اگر از این سیره صرف نظر بکنیم اون ظاهر از دلیل بله حجته. ولی این سیره نمی سیره میگه بعدن این ظهور ایجاد شده است. ظاهر از دلیل چی؟ ظاهر از دلیل. ظاهر چی؟ ظاهر از دلیل. ظاهر از دلیل. اما دیگه دلیل ما مثلا آیه قرآن ظهور دلیل چیزی داره دیگه میگه اگر از این سیره صرف نظر بکنیم بگیم که آقا این سیره مال بعد نیست از این سیره صرف نظر اون موقع حجه خود. چون دیگه ولی اگر به این تقیقت کنیم میبینیم آقای بردم ظهور ایجاد شده ندر زمان قرآن لذا اون موقع حجه نمیشه و اما از آهر از باشه برای هم شد دیگه برای فردا یعنی فردا شنبه دیگه فرصتی هم هست برای شنبه انشالله این بحثا رو کامل کنید یه خود اول کلاس با هم صحبت داشته باشیم من میپرسمی باشه باشه بحث امروز مخصوصا این که چون بحثای مهمی بود خیلی بود بود. خب دوستان که دیر تاش فردا بگن اسمشون ما سوالا حالا شما آقای جوهر. آقای جوهری باشه, باشه شما مقای آقای فراد خب بله اون رو زدم آقای فراد دیروز هم بودی دیروز. دیروز. من حضور نزدم دیرو مل نمیدونه بعد